معمای ضد و نقیز کائنات ربادارتارس. من تو را همچون فرزندم دوست می دارم پال من در مقابل تو احساس کوچکی می کنم. تو هم پدر منی هم روح من ربازارتار حقیقتا این چونین است من روح هر بشری هستم با این وجود من روح هر بشری نیستم با هم میگویم که من استاد تو هم با این وجود استاد تو نیستم من در همه کائنات حضور دارم در این حال در آنها نیستم این معمای عظیم حیات است تو میفرستی چگونه میتواند این چنین باشد این سؤال بزرگی است که هر روحی را که مبادرت به شناخت خویش و خدا میکند به حیرت وامی من هستم اما من نیستم به منظور پاسخ به این سوال میباید از تو بپرسم من کیستم پاسخ تو این خواهد بود که من استاد حق در غید حیاتم و تمامی حیات درون کالبد من صورتی یافته است این حقیقت دارد اما تا آنجا که از دیدگاه واقعیت مطرح باشد اما باز هم میگویم که این حقیقت نیست. زندگی بدان گونه که ما در زمین سفری می کنیم، شامل مجموعه ای از سوالات معماگونه و ضد و می میباشد. اگر ما در هستی خدا به سر می بریم پس چرا باید مشقت این همه دورانهای پر از سوال را بر خود هموار سازیم؟ یک پاسخ روشن وجود دارد. می توان آن را در یک کلمه ادا کرد وابستگی وابستگی به چه؟ به همه آن چیزهایی که در زندگی‌های بیرون از خودمان و درون به ما ارزانی شده است. اما بیش از هر چیز دیگر، های ذهنی ما پیوندهای ناگسستنی ما را می‌سازد. میدانی ما حجم هنگفتی از این محموده ذهنی را با خود حمل میکنیم ما با آنها به این دنیا میاییم تصور میکنم در قانون اساسی شما عبارتی هست که میگوید همه آدمیان آزاد و برابر زاده اند. این گفته است. زیرا در بازگشت هیچ یک از ما برابر با دیگری قدم به این جهان نمیگذارد هر یک از ما محموده های بیفایده خودش را با خود به این جهان می آورد که هیچ تشابهی به دیگری ندارد مگر به طور اتفاقی به نمونه زیر توجه کن ما به ندرت فرصت اندیشیدن به خود را به دست می آوریم از همه سو توسط کلمات چاپ شده و سخنانی که از رسانه ها پخش می شوند شده این و اونطور هستی اطراف ما پر از جویبارهای جریانهای است که از رادیوها، روزنامه ها و تلویزیون به سوی ما حجوم میآورند. پس جای تعجبی نیست که فرصتی جهت اندیشیدن خالص در خصوص خدا به دست نیاوریم به هر حال، هنگامی که آدمی سفر بازگشت به خانه حقیقی خود ند خدا را آغاز میکند. دفعتا به دروازه نخستین جهان از اقالیم فلکی می رسد. در اینجا متوقف می شود زیرا آزمون هایی وجود دارند که او میباید پشت سر بگو دارند. چه آگاهانه و در دست های یک استاد باشد چه توسط هر شیوهی که فرد را مبادرت به سفر به تنهایی به این نواحی رهنمون شده باشد آری روح های بسیاری در هنگام خواب کالبد انسانی خود به این نواهی منعکس شدند و هنگام گذراندن این آزمون ها خود کوچکترین اطلاعی از اینکه در جهان بیرون چه می است نداشتند این آزمونها ها عبارتند از موانع و مشکلاتی مسلم در جهان درونی یا ذهنی آدمیان گویی هرچه می کند و می اندیشد به زرد خودش می انجامد. بهترین دوستانش او را به باد انتقاد می گیرند. و وی می گریزند همه دنیا به ستیز با وی و خانواده اش می پردازند. هر هرچه دارد از دستش می روید. او به تنهایی در جهان درون بر لبه زمان توقف می کند. و اینجا یکی از است که نیروی الهی بدان رهنمونش کرده است تا به تنهایی در حضور خدا بیستند در اینجا از فراز خریج و حیوه هر پهناوری که در فضای جهان ظاهر گسترده شده است ایستاده و به نظاره مسیر بیپایان زمان و خیش تنهای خود مشغول است. به چه دن نهد؟ به کرو کند؟ به چه سوروز؟ به کجا رسد؟ پیش از عبور از دروازه و ورود به سرزمینی که تحت فرمان حاکم نخستین جهان پس از این دنیاست است و چندی برایش پیش می او میباید خود را از شر محمولهی که درون روح خود تا به دینجا حمل کرده بود خلاص کند روزها، هفتهها، ماهها و شاید سالهای متمادی لازم باشد زیر تازیانه های تردید درد بکشد و قلاف بیرونیش از وحشت به خود بلرسد نیروی کل او را از هم میدرد و ناباوری و تردید تمامی ایمانی را که به استاد دارد از هم می پاشد استادی که هرگز لحظه ای هم جانب او را ترک نگفته است همه حساسیت‌های درون او همچون پوشالی که تعمه آتش شده باشد می سوزند. روح تا به دستیدن به سیغل پاکتری از درخشندگی درون تازیانه می تا شایسته وزیفهی باشد که در مقابلش خواهند نهاد و می این چه است که مورد می باید به جا آورد تا آماده درک معمای خدا باشد وزیفهی خطیری که در مقابل توست روبرو شدن با پروردگار نخستین جهان پت از اینجاست این در مسیر زندگی معنوی مورد انتخاب تو عمل آسانی نیست اما این تازه ابتدای جاده است که در آن به سوی طبقات دوردست جهانهای فلکی در اون ره شده ای اما روزی فرا خواهد رسید که مکرراً در حضور استاد از مرز تمامی طبقات جهانهای الهی با استفاده از کلمه تبرک شده عبور نمایی در هر صورت ابتدا میباید از پس آزمونی برایی که الماندای هر طبقه ای برایت منظور داشته است. بسیاری پیش از تو در حوالی مزن نخستین طبقه سرگردان شده و یا تصادفا و یا آمدن و به رهنمود هدایت الهی با این مقام پرهیبت رو در رو شدند و او را با خدا اشتباه گرفتند. در اثر این دیدار تغییری آنچنان فاحش در طبیعت بنیانی آنان رخ داده است که ذهن آنان تعادل خود را از دست داده و این تصور برایشان پیش آمده که در طرح آفرینش الهی جایگاه مقدس و مبارک رهبری بندگان خدا برایشان منظور شده است تو خود این رهگم کردگان را دیده ای که آموزش نادرست میدهند و پیروان خود را به جای سوق دادن به سوی خدا از راه او به در اگر این راه خطرافندگان توسط استاد تبییش داده میشدند، آنگاه تدابیر لازم جهت آمادگی برای این دیدار برایشان مهیا بود اکنون بیا به عمق توضیحات این برخورد بپردازیم. اولا او میباید بیاموزد چه عملی میباید انجام شود تا از مرز این جهان عبور کرده و بر سر قرار با مقام اعظم نخستین جهان واپسین که ما او را با نام جات میشناسیم حاضر شود بر حساب اتفاق نیست که تو به آنجا میروی همه چیز از پیش توسط استادی که با این مقام تماس گرفته مهیا شده است درست به همان گونه که در طبقه زمینی قرار ملاقات میگذاریم باقی کار آسان است به کمک استاد از هان و قلبهای ما میباید از مراحل تفکیه لازم عبور کرده باشند باید همه چیز را به سوئی نهاده و تمامی اعتماد خیش را به استاد تسلیم کنیم باید تزرزل و وحشتی که در ذهن داریم از خود فرو بریدیم همه ی وابستگی ها باید از ذهن جدا شوند و تنها یک چیز باقی بماند و آن عشق ما از برای استاد است و از برای نور و صوت الهی چشمانداد و احساسی که در آن قرار می‌گیری به شرح زیر است به نظر می‌آید که من تو ترک کردم اما حضور من همواره در آنجاست هر کجا که باشی نمایندگانی به دیدار تو آمده و تو را در طول یک شاهراه پر از مردمی که در حال هجرس می می‌باشند تو قصر عظیمی که در دامن کوهای دوردستی نشسته است بدرقه می کنند. استقبال کننده ای تو وجود فرشتگونه است که خرقه سفیدی به تن دارد او تو را به درون قصر راهنمایی کرده و از میان تالار درازی به محظر وجودی پرعظمت میبرد میبرد که به شیبه یوگی ها بر روی آسمانه تختی جلوس نموده است او را بیشتر به صورت توده ای از نور خواهی دید تو یک وجود هیات یافته، نوری که درخشانتر از هزار خورشید است، آنچنان کورکننده که نگاه کردن مستقیم به آن برایت مقدور نیست. در این لحظه تو از اندیشه ها و احساسات کاملا فارغ خواهی شد. صدای همهمه ای از این که به صوت رعد میماند شنیده می شود و صدایی از درون نور سخن می گوید. من آنم که تو به عنوان خدا میشناسی، اما من خدا نیستم من در هر بشری حضور دارم اما درون هر بشری نیستم عشق من در توست اما نه در تو هنگامی که این معما را حل کردی دوباره بازگرد اکنون با تو این را میگویم این معمای عظیم حیات است و هر مریدی میباید مشکل آن را بگشاید پیش از اینکه شایسته بالاترین مراحل معنوی در زندگی خود شود یک کلام است هنگامی که آن به وجود متجلی شد کلمه یا نام خدا خوانده شد و تمامی کائنات جلوه ای از هستی آن می باشند. آن آن قالب نور و صوت آن صوت یا صدا از درون نور با مورید سخن گفت که آن خداست و به این ترتیب هر بشری جلوه ای از اوست اما در همین حال آن خدا نیست که به تجدی درآمده. زیرا آن کانون و منشعه تمامی تجدیات و صورتهاست هاست و از درون آن است که آفرینش ملزم شده است به کیهان جاری شود به طوری که گویی تمامی آفرینش هرگز در آن وجود نداشته است به این کلمات آخر توجه کن آفرینش در تو یا در من هستی ندارد بلکه ما در تصاحب قدرت آفرینش می باشیم می فهمی؟ آن مقام متعال نگران جهان اطرافش نیست زیرا چرخه کائنات به گردش خود ادامه می دهد گونه که یک ماشین بعد از روشن شدن خود به خود می گردن. تمام آنچه آن مقام می کند نظارت بر گردش کائنات است آن بالاترین و پست است آنانی که چشم درونشان باز شده است او را در تمامی آفرینشش یعنی نمایش بزرگ الهی و تمامی آفرینش را در آن میبینند حالا تو میتوانی شاهد باشی که او هرگز نگران آفرینش نیست و طوری از آن جداست که گویی هرگز خلقتی در او وجود نداشته است برای فهم بیشتر تو من مقام عظیم الهی در نخستین جهان پس از اینجا و در عین حال پربعتگار تمامی جهانهای درونم من هرگز تو را ترک نگفتم هرچند این گونه به نظر بیاید معذارک مادامی که من در طبقه زمینی حضور دارم یک بشرم و تحت حاکمیت قانون طبیعت زمین این اصل در خصوص حیات من بر روی تمامی طبقات کیهان های فلکی مصداق دارد اما در آتماساروپ یا کالود معنوی یا روحی من فراسوی قوانین همه طبقات عالم قرار دارم. در آن جایگاه هست که من همه چیزم و در همه چیز، ولیکن غیر وابسته و فارغ از های هر آنچه در این عالم یا در سراسر عقالیم فراشی، در قید حیات و حسیس، به عنوان مقام زنده الهی در هر یک از طبقات میباید درگیر و نگران حیات در آن طبقه از هستی باشم؟ اما چرا در خصوص کل هستی فارغ بالا؟ چون هر چیزی در جایگاه بلحقه خود قرار دارد و فعالیت اتم زنده در نظم شایسته خیش برقرار است؟ حتی در مقیاس آواز یک جیجرک روی شاخ درختان؟ بنابراین من بر کل کائنات مقدرم و همه حیات در من به تحرک در می آید. در وحدت در سراسر گستره زمان و فضا از سرچشمه الهی به بیرون جاری و به همان سرچشمه در حال بازگشت من نسبت به سرنوشت بشر بیتفاوت و فارغم زیرا آدمی به عنوان یک روح فردی و مستقل روزی به خانه فیش باز خواهد گشت اگر یک میلیون سال برای یک روح طول بکشد تا دریابت خانه حقیقیش کجاست چه جای نگرانی است؟ زیرا در مقام خدا من همه چیز را می دارم. اما از دیدگاه انسانی ملزم می باشم راهی را که تو می تا به پشت دروازه اقدیم الهی به فیمایی نشانت دهم پس میبینی که من استادم من ازالک استاد نیستم من بالاترین و پستترینم و هیچ انسانی یارای تحمل عشق مرا ندارد زیرا این همان است که پدر به فرزند دارد هر روحی که به درجه کمال رسیده باشد میتواند همانی را بگوید که من هم اکنون گفتم زیرا آنها همه یکی هستند اما مایی که چلوه های کمال را یافته این بس این و اینقدر می توانم بگویم که پس از اینکه قدم به درون جهان های ماورای دومین بخش اعظم هستی می دیگر مطلقاً در کمال و در تمامیت دانانی که به مرز مقدس می جهان نائل آمده و بعد در پروردگار آنجا دقالب می کنند آنهایی که حراس و دلهوره قدم به عقالیم ناشناخته ی جهانهای معنوی را تجربه کرده اند می که شهامت داشته باشید و ایمان و اعتماد خود را به استاد پا نگه دارید اما اگر استادی ندارید ایمان خود را در گرو ذات الهی قرار دهید زیرا من نیست خدایم چون از همه چیز که بگذاریم این منم که تو در درون ملاقات میکنی و من نسبت به همه فرزندانم عشق و محبتی بیپایان دارم. بعد از اینکه قلب تو را تطیر کردم میتوانی با من روبرو و راز بزرگ کائنات را بگوشایی، دفعتا یکایی که شما به این مرحله از طی طریق خواهید رسید. آنگاه میباید آزمون بزرگ عشق الهی را بگذرانید پس قطعا می میگویم که شهامت عشق و ایمان داشته باش هرچند دنیای اطرافت بر سرت نعره برکشد و تو را به باز انتقاد بگیرد آنگاه که این معما را حل کردی دیگر هرگز در زمبه توده ها قلم داد دیگر به صورتهای متعارف عمل نمی اصولگرایی را پشت سر خواهی گذاشت و جزئی ای از این اقلیم پرشکوه الهی خواهی بود تا عمر خیش را در جهان زمینی در عدای وظیفه و خدمت معنوی به نژاد بشر سپری کنی